میان تاریکی تو را صدا کردم سکوت بود و نسیم که پرده را می برد. در آسمان ملول ستارهی می سخت میرفت می رفت ستاره می تو را صدا کردم تو را صدا کردم تمام هستی من چو یک پیاله شیر میان دستم بود نگاه آبی ماه به شیشه ها میخورد ترانهای ای غمناک چو دود بر میخواست ز شهر زنجره ها چو دود می لقزید به روی بنجره ها. تمام شب آنجا میان سینه من کسی ز نو نفس نفس میزد. کسی به پا میخواست، کسی تو را میخواست. دو دست سرد او را دوباره پس میزد. تمام شب آنجا ز شاخ سیاه غمی فرو می ریخت. کسی ز خود می ماند، کسی تو را میخواند. هوا چو آواری به روی او میریخت. درخت کوچک من به باد عاشق بود به باد بیسامان. کجا است خانه باد؟ کجاست خانه باد؟ سلام من مصطفی ام و اینجا رادیو 18 بنفشه جایی که بنفشه هجدهه و از غذا رادیویی که قرار شادی و قماشو با شما تقسیم کنه فکر کنم این کار رو هم کرده اصلا رادیو هجدهه بنفش به دنیا اومد تا مهربون باشه و حرف بزنه و نذاره کسی تنها بمونه البته تنهایی هم بد نیست گاهی وقتاش خوبه ولی نه همیشه بعضیا بعضی ها بعض هستن که همیشه های خدا تک و تنها و بیکسند شاید این دختره که همیشه ها بنفش ما اومد تا نظر کسی تنها بمونه و یا حداقل این احساس چندشنا بیکس بودن و برای نیم ساعتم که شده، از توی دل آدما و درختها و گلا و کتاب ها و گربه ها و سگا و ماهیا و اصلا هر چیزی و هر کسی که یه گوشی داره برای شنیدن و یه دلی داره برای بودن به کش بیرون و با صدای بلند بگه، من هستم. من هستم تا مهربون باشم و دلاتون رو شاد کنم و دنیا رو بنفش. اینجا رادیو هجده بنفشه و شما به اپیزود 15 از فصل دوم اون گوش میدیم. اپیزودی که هر سال همین موقع تا روزی که مادر خونده ی این دختره که همیشه ها بنفش زنده است از هجده آذر سردی میگه که چند ماه بعدش توی بهار باعث شد اولین جوونه از موهای طلایی طلایی این دختره که همیشه ها بنفش از زیر خاک دره. من مصطفی و شما به ویژه برنامه یه هجده آزر راژیو هجده بنفش گوش میلیم این اپیزود تقدیم میشه به همه ی اونایی که ما رو گذاشتن و رفتن این اپیزود با افتخار تقدیم میشه به هجده آذر غمگین زیبا تو این فکر بودم که با هر بحانه یه بار بیارم تو خونه حواسم نبود که به تو فکر کردم خود آسمانه خود آسمانه تو دنیای سردم تو فکر کردم که عطرت بیا به پیچ تو باقت شد بیای بخندی تا باز خنده ها تو مثل شندونی بزارم رو تاقچه تو آره آره به تو فکر کردم که بارون به باره به تو فکر کردم دوباره دوباره به تو فکر کردم عجب حالی داره کلی آدم دنیا میان، کلی آدمم میمیرن. نه تنها آدم ها، بلکه همه ی همه ی موجودات، حتی اشیا. حتی قلی پلاستیکی هم یه روزی خسته میشه و دلش میخواد که بمیره و دیگه نباشه تو بازی اسم و فامیل. مرگ چیز بدی نیست، اصلا هم چیز بدی نیست. مرگ برای اونی که میمیره اتفاقا یه استراحت طولانی مدته و همیشگی ها با حقوق و مزایا و بیما و بیلید به هوایی و باقی جزایر جنگل بلای است. ولی خب مرگ بده مرگ خیلی بده برای اون کسایی که مجبورن زنده بمونن زنده بمونن و بدون اون کسی که رفته و دیگه بر نمیگرده زندگی کنن دو روز قبل از هجده آذر یه شب سرد توی پاییز یکی از این موجودات یهویی یه افتاد و مرد اصلا همه موجودات یهویی یه هایی و می میرن. حتی اگه مریض باشن و همه بدونن که دارن می میرن، اون لحظه‌ای که می میرن برای اونایی که دوستشون دارن یهوییه یه توی اون شونزه آذر قمالودم که تو رفتی و یه افتادی مردی همه چیز همون لحظه ایستاد. اصلا تموم حریرای خاکستری و بنفش و قرمز دنیا هم با رفتن تو مردن. فکر کنم کلن آذر ماه رفتن هاست. تو در دل دیوانه نگنجد گنجست و چه گنجی که به ویرانه نگنجد تنهایی هم امشب که پرست از قم قربت آنقدر بزرگ است که در خانه نگنجد بیرون زده ام تا بدرم درم پرده شب را کی نعره دیوانه به کاشانه نگنجد خانه بیارید که آن باده که باشد در خورد خواریم به پیمانه نگنجد میخانه بی سخف و ستون کو که جزانجا جای دگریم گریه مستانه نگنجد مجنون چه هنر کرد در آن قصه مرا باش با طرف جنونی که به افسانه نگنجد تا رو به فنایت زدم از حیرت خود پر. سی مرغم و سی مرغ تو در لانه نگنجد در چشم منت با تماشا که جز اینجا دیدار تو در هیچ فریخانه نگنجد دور از تو چنانم که قم قربتم شب حتی به غزلهای غریبانه نگنجد چرا رفتی چرا من بیقرام سودای آقوشتو داره نگفتی ماه تا امشب چه زیباست ندیدی جانمت قم ناشکی باس چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودا موش تو دا چه یار من بود؟ امیدت گرچه در پندار من بود بیا شرابی دیگرم ده زمین حقیقت ساقرم چرا رفتی چرا من بی‌قرارم به سر صدای گوشی تو دارم چرا رفتی چرا من بی‌قرارم به سر صدای او تو دوره نگافتې ما امشب چیزی باس ندیدی جانم از غم ناشکی باس چرا رفتی چرا من بی قرارم بسر صدایم شو تو هجده آزر روز قمگینیه که هجدهش رو به این دخترک همیشه بنفش به عنوان ارسیه یا حتی سرجهازی داده. شاید بهتر مثل پارسال همین موقع یه کمی از این روز حرف بزنیم. اصلا چی شد که یک روز عادی از آخر پاییز تبدیل به روز غمگین و, و گریه آلود شد؟ اصلا بهتر این روز رو توی تموم تقویمای دنیا به عنوان روز رفتنها و برنگشتنها، نامگذاری کنیم روزی که قرار بود سر قرارش بمونه و بیاد ولی نیومد ولی نموند اون روز بود که تمام خرسای سفید دنیا رفتن تو صد لاشخال و انواری و, و تمام شالگردنهای بنفش دنیا رو هم باد با خودش برد و دیگه هم کسی نیومد خب با اینکه دخترک دختره که ما هجده بودناشو مستقیم از این روز غمگین گرفته ولی الان اونقدام ناراحت نیست. شاید باید این روزهای قمالود و اتفاقای از بین برنده باشن تا چیزای خوب یه از زیر خاک بیان بیرون و بگن موشه ما این جایی. فکر کنم این اتفاقای خوب با اتفاقای بد قراردادی معاهدهی چیزی بستن و امضا کردن اصلا به نظر من هممون سر و اتفاقای بد همون اتفاقای خوبن اصلا بد و خوب و سیاه و سفیدی وجود نداره کی میدونه؟ با از ما بود که خواب سرچشمه را در خیال پیاله میدیدیم. دستهامون خالی دلهامان پر گفتگوهامان مثلا یعنی ما کاش میدانستیم هیچ پروانهی پری روز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد. حالا مهم نیست که تشنه به رویای آب می میریم از خانه که میایی، یک دستمال سفید پاکتی سیگار، گزینه‌ی شعر فروق و تحملی طولانی بیاور احتمال گریستن ما بسیار است هوای حال من قمدار ولی از عبر و بارون خزونیست زمستون دارتو تو لحن تو انجار کابرش تو هزار تا آسمانیس هوام دلگیر نفس هم سرد دلم خود یا عالم در دل دارم تو سین شب تا و قمه یار و دل زار هوا بیمه یار ساقی همینه چه بیتابانه بی بیتابه طبعه تو چه بیرحمانه بیرحمانه چبیرا چه بیان تازه میخوام که تو باشی چه باهنگیزه میخونی که میرم منو سازم منو سوزم منو توو پر که شکر تو و باده منو از اون اول اول اول تاریخم این بچه تصمیه برای نوبشر هیجان برانگیز بود اصلا شاید آدم به غیر از اون پنج حس اصلی و اون یه دونه حس ششم جینگیل بلاش یه حس صفرومی هم داره که آدمو مجبور میکنه سر از هر چیزی دراره خیلی‌ها هستن که میپرسن هجده بنفشی یعنی چی اصلا چی شد که اسمش شد این موجودات وقتی دنیا میان شاید سختترین کار دنیا گذاشتن یه اسم روی اون تازه متولد شده است به آمار تولد موجودات در هر لحظه فکر نکنین که هجومی از سختی نامگذاری میفته رو دوشتون حتی فکر کردن بهش هم آدمو خسته میکنه ولی خب از اونجایی که آدمی ذات به نفس کشیدن به این سختی هم عادت کرده و حتی گاهی متوجه حضورش هم نمیشه به این کار سخت و مهمم بر اساس همون اصل عادت لعنتی عادت کرده و بعضن حتی متوجهش هم نمیشه این دختره که همیشه با ما، که ماکیج ده بودنشو با وجود اون غم نهادینه شدهای داخلش همواره خیلی دوست داره این هجده بودنه را از هجده آزری گرفت که یه بافتنی بنفشم دور گردنش بود از اون بنفش آبی تورا اصلاً بنفش این دختره که همیشه ها بنفش در واقع آبیه این 15امین اپیزود از فصل دوم رادیو 18 بنفش ویژه برنامه هجده آذر این دختره که همیشه ها و همواره بنفش بود ویژه برنامه که هر سال همین موقع میاد تا یاد نوع بشر بیاره رفتنا و نموندنا و یا و اون زیباترین چشمان دنیا همیشه ها حضور پررنگی در زندگی ماها دارن و هر لحظه مثل کارت جاکر یه گوشه ساکت و آروم و مظلوم نشستن و چون کسی ازشون انتظار حرکتی نداره توی لحظه دست میکنن تو کلاه بوغیشون و اون گرد جادویی رو میپاشن رو سر و کله ماها که یادمون بمونه که اینجا خبری از شادی مطلق نیست من آرش هستم و شما میتونید ما رو در کانال تلگراممون با نام رادیو 18 بنفش با 18 عددی و بخش پادکست های تارنمای بیبتونز دنبال کنید اما حرف آخرین که یادمون نره درست تو همون لحظه که برای اینومین بار منتظر پاشیده شدن اون گرد کذایی هستید دوباره دست میکنه تو کلاهش اما این بار دیگه گردی براش نمونده و درست تو همون لحظه تو همون آن زندگی یه آسه گشنیز خوشگل میذاره تو دستت و دست باقی ماجرایی که باز هم شادی صرف نیست اما میارزه به بودنش به تجربه کردنش میارزه که پاشی و با اندک توانی که داری بری میونه کاشهای سبز پاییزی و هیچ وقت به پشت سرت نگاه نندازی و تمام